أعوذ من اللّه السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم اللّه الرحمٰن الرحيم الحمد للّه رب العالمين الصلاة والسلام على نبینا و وآلِه تاهرين خدمت عزیزان دانشجوی خودم عرض سلام دارم روز به خیر عرض میکنیم انشاءالله که از نعمت صحت و سلامت کامل برخوردار هستید و از هر گونه آفتی هم روحی و جسمی و روانی به دور امشب هم شب ولادت منجی عالم بشریت پیغمبر گرامی اسلام ختمی مرتبت هستش و شب تولد فرزند او امام جعفر صادق ولادت نبی گرامی اسلام به ولادت امام جعفر صادق ولادت سنت نبوی و امامت علوی خدمت شما تبریک ارز میکنم قدر بدانید ان شاء که ما رو هم از دعای خودتون فراموش نکنید خب اما درسمون ما یک هاشیه ای رو توی درس اقسام تشبیه برای شما جا گذاشتیم بعد که به تشبیه زمینی رسیدیم این حاشیه دوبله میشه این دوتا حاشیه رو باید با هم بخونیم پس درس اقسام تشبیه که تشبیه مرسل و معکد و مفصل و مجمل و تشبیه بلیغ بود بیارید یه ای دارد زیر اون قواید که این حاشیه رو من برای شما بخون ببینید ما تو تشبیه زمینی چی گفتیم؟ گفتیم تشبیه زمنی تشبیهیه که در شکل متداول تشبیهی نیامده بلکه ارکان تشبیه یلمهانه من ترکیب اینا از ترکیب احساس میشن فهمیده میشن ما گفتیم دو جزء داره جزء اولش یه چیزی رو به مشبه نسبت دادیم تو جزء دوم دلیل و برهان بر اون که ممکن است اقامه کرد حالا اون صور معروف تشبیهی چه سوریه اون صور معروف چه سوریه ما صورت های معروف تشبیه چجوره مثلا یکی شما توی اون درس سابق مثلا گفتن بودم به شکل محتده و خبر باشه. مثل زیدون هستد درست حالا این صور معروف تشبیه رو ما اینجا میخوایم برای شما بیان کنیم که توی شکل تشبیه زمنی شما این صورت رو نمیبینید دیگه بلکه احساس میکنید یعنی اگه بندازیش تو لوله آزمایش میتونی ازش این صورت تشبیه رو استخراج کنید نگاه کنید چی میگه؟ میگه مند تشبیه از نوع تشبیه بلیق حالا درسته که اینجا داره میگه از نوع تشبیه بلیق ولی در واقع اگر عدات تشبیه و وچ بیاد اینجا دیگه تشبیه بلیق نیست میشه مرسله مفصل یکیش بیاد یکیش نیاد باز میشه ما صور تشبیه رو میخوایم برای شما بگیم میگه من تشبیح بلیق المستر و المزاف و المبین و لنو. یکیش مصدر یعنی مفعولان مطلق مفعولان مطلقی که بیان نو میکنه چون میده مطلق تأکیدی هست نوعی هست و عددی اونی که نوعیه از نوع تشبیحه نهو راق زیدون راق زیدون روگان سالب راق زیدون روغان یعنی دوید زید مثل دویدن روباه یه نو دویدنی داره مثل اون دوید اینجا ما زید رو تشبیه به کردیم در دویدنش در حرکت کردنش اما شما مشبه رو میبینی زید مشبه هم به ببینی سهلت درست شد؟ و این شکل عدات تشبیه و وصف شبه رو توش نمی‌بینیم شه تشبیه بگید پس یکی از اقسام متداول تشبیه به شکل چی میاد؟ به شکل مفعول و مطلق نوعی این یکیش یکی از اقصا یاد دید منت تشبیح بلیغه المستر و المزاف و المبین و لنوه راغ روغان از سعر و منها عیزند باز از تشبیح بلیغ شکل دوم، شکل دومی که ما تشبیح رو میتونیم ببینیم و منها عیزند اضافت المشبه به للمشبه مشبه هم به اضافه شده به مشبه خب مشبه و مشبه به به شکل مضاف مضافه نه و مشبه به اضافه شده به مشبه مثل چی؟ لبس فلانون لبس فلانون سو لبس فلانون صوب الا ما میگیم میگه فلانی لباس عافیت پوشید لباس عافیت یعنی چی عافیت یعنی صحت و سلامتی لباس هم که شامل چیه؟ این در واقع یعنی عافیت شامل حال فلانی شد مثل لباس و سر تا سر وجودش رو فرا گرفت چطور لباس عرب لباس می از سرشون تا نکه پاشون رو لباس فرا می گرفت دیگه پوشش داشت پوشش کامل م? لذا اینجا آمده عافیت که صحت و سلامتی است تشبیه شده به لباس در چه چیز تشوی شده به لباس در شمول فراگیری یعنی علا آفیت و کل لباس فش شمور مثل لباس است در شمول و فراگیری شامل حال فلانی شده اینم یه نوع که تو فارسی هم بهش میگن اضافه تشبیهی اضافه هم به به مشبهم مثل صوبال عافیت لباس عافیت نگولن به صف فلان حالا اگر از ما بپرسن صوبال عافیت چیه میگیم اضافه تشبیهی حالا میگن چه نوع تشبیحیه میگیم تشبیح بلیغه چون مشبه هست آفیت مشبه هم به هم هست اما ورشبه و عداد تشبیح نیست تشبیح بلیغ حالا اگر اینطوری گفته بود لبس فلانان الافیته الاتی هیه که لباس فشمول و میشه تشبیح عادی که هم مرسل داد تشبیه داره هم مفصل وچه شود داره لیس لب صفول آنان صافی این دوتا پس دو مورد. وله استیفا صور تشبیه الذيی لم تز فیه ح عدداد اون ظرها مشسب خد ستن وربین اگرگه می خواهید یاد بگیرید؟ مواردی رو که تشبیه داریم و توش عدات تشبیه ذکر نشده حاشیه صفحه چهل و را بخوان که ما رسیدیم هنروز بهش صفحه چهل و دنباله همینه درست شد حالا می میخونیم تو بحث تشبیه زمنی ما صور تشبیه رو با هم پس دو صورتش رو با هم دیدیم دو صورت کدوما بود یکی اینکه مفعول مطلق نوعی باشه مثل راق زیدن روقان از سعد دوم مشبهم به دوم مشبهم به به مشبه اضافه شده باشه مثل لبس از زیدن صوبن so آفیا این دوتر دیگه. حالا چند مورد دیگه هم باشه اضافه میکن پایین نگاه کنی هاشیه تو صفحه 46 میگه صورت تشبیح المعروفتو هی امایتی صورت تشبیهی که معروفه این هاست حالا تو این صور تشبیه اگه وقت و عداد تشبیح ذکر نشه میشه تشبیه بلیق اگه ادات تشبیه ذکر بشه میشه, میشه مرسل اگه وج شبع ذکر بشه میشه مفصل اگه ادات حذف شده باشه میشه مؤکد اگه ادات حذف شده باشه میشه موکد اگه وج شبه حذف شده باشه میشه مطلق نکته ای که دید. یک ما ذکرت فیل ادات می تونن که ادات پوش ذکر شده حالا وج شبه ذکر شده یا نشده ولی به این شکل موضوع کنت بیه لادات نحو الماء کلج یعنی به شکل مبتدا و خبره الماء کلج به شکل مبتدا و خبر اما این چه نوع الماء کلج این آب مثل نقره است یعنی در صفا و پاکیزگی اداه تشبیه ذکر شده میشه مرسل بچشبه این ذکر نشده میشه مجمل او حزفت والمشبه به خبرن عداد تشبیه هست بشه مشبهن به بشه خبر یعنی باز به شکل مبتدا خبرن ولی اداد تشبیه نیست نهون الماعو لجینون الماعو لوجن الان اگر ودهشبه ذکر نشده باشه میشه تشبیه بلیغ آ این آب نقره است یعنی منظور که مثل نقره است در پاکیزگی و صاف بودن براق بودن اگر وحچه شود ذکر بشه میشه, میشه مفصل ولی عدادو تشبیه نیست میشه معکد و کان و لجینا چرا دوتا مثال زد چون مبتدا خبر باشه یا نواسخ مبتدا خبر مثل کانه این نبرش داخل شده باشه فرق نمی کنه چه شما بگید الماءولو جینون این تشبیه بلیغه چه بگید کان الماءولو جینون تشبیه بلیغه یا بگید ان الماءولو جینون بازم تشبیه بلیغ پس یکی از صور تشبیه یکی از صور معروف تشبیه اینه که مشبه و مشبهان به به شکل مبتدا و، خبر باشه. تمام. یعنی سه تا صورت شده. یه صورت دو تا صورت اونجا خوندیم. صوره معروف. یکی به شکل مفهول و مطلق باشه. راق از زیدون روقان از سعد. دوم به شکل اضافه مشبه به و مشبه باشه. مثل لب زید فلانون صوبلافیه. سو سوم به شکل مبتدا خبر باشه. حالا به شکل مبتدا خبر نواسخ مبتدا خبر هم سرش در اومده باشه اشکالی نداره. 4 او حالون یعنی حذف عدات تشبیه و مشبه به حالون ادجای خبره ادات تشبیه نیست مشبه به هم حال شده یعنی مشبه هم میشه ذل حال مثل چی نحو سال الماء لجینا یعنی این آب روان شد در حالی که مثل نقره است مثل جا از زیدان تو نه میخوندیم یعنی شجاع جا از زیدان اصدن هم این همه این هم الان از نوع الان این تشبیه بلیغه الما مشبه لجا اینن مشبه به ولی به شکل زلحال و حال آمده صور معروفه شد درست شو مثل جا از زیدان تمام این تکرار اون در مطلب قبل درست شد مسترون مبین لنو مضاف اینو اونجا بون نمی راقز را ایدان روقان را از سر این همون مستر یعنی مفهول مطلق متدرست مبین نوه و اضافه شده درست شد نهو سفل ما او سفا صفا یسفو یعنی پاک شد پاکیزه شد پاک و پاکیزه شده این آب مثل پاک و پاکیزگی نغره م? مثل منجا گوه راق زیدون ربقان سب این هم یه مورد باز هست اقسام تشبیه که معروفه یعنی صورت و شکلی که تشبیه یا او مزافون الال مشبه این هم باز منجا یعنی مشبه هم به اضافه شده مشبه نه سال لجین الماء اینجا گفت لبس از زیدون صوبال آفیت اینجا لجین که مشبه هم به اضافه شده به آب اونجا هم آفیت مشبه بود صوب بهش اضافه شده شد نگاه کنید اینم باز تکراره این هم باز میره تو اون قسمت خبر که بالا گفت. چرا؟ چون مفعول دوم افعال قلوب هم افعال دو افعالی هم باز خبر بوده. ما گفتیم یا خبر باشه یا نواسخ بر سرش در اومده باشه. خب نواسخ کانه هست این نه هست. افعال قلوب هم هست. نه هم میتونم باشه او مفعول به سان لفعل من افعال یقین و روشخان. افعال یقین و روشخان شک و یقین علم تو و تو افعال غلوب بهش میگن و علم تلم ماعل و زینا یعنی الان مبتدا بوده لوجاینا خبر بوده نه. پس تو الان چند قسم شد ببینید یکیش به شکل مبتدا خبر باشه حالا ناسخ بر سرش در اومده باشه یا نیومده باشه این یک دوم به شکل ذل حال و حال باشه درست شد سوم به شکل مفعول مطلق نوعی باشه چهارم به شکل اضافه مشدان به, به مشبهه این چهار تا. این مسئول به دوم تو داخل همون مبتدا و خبر پنجم او صفتون علت التحویل به مشتق موصوف موصوف مشبهه صفتش مشبه بهه مثل اینکه که جا رجلون اسدون آمد مردی مثل شیر جا رجلون اسدون یعنی رجلون شجاون رجلون فائله اسدون صفتشه یعنی شجاون یعنی تشبیه بلیغه عدات تشبیه شبه افتاده و به شکل صفت و موصوفه میگفتیم به شکل زلحال و حال حالا میگیم به شکل صفت و موصوف او صفتون حالت تحویل به مشتق خب صفت باید مشتق باشه اینجا هم اصد به شجاعون میره میشه جا عقجلون اصدون یعنی جا عقجلون شجاع نه اصالا ماون لجینون اینجا هم لجینون به مشتق میره یعنی صافن یعنی صاف زلال با صفا. ساله ما اون لژه اینو این هم بعد او اوزیفل مشبه الال مشبه بده یا مشبه اضافه بشه به مشبه هم ده قبلی مشبه هم اضافه میشه مثل صحب و لعافیه. اینجا نه مشبه اضافه میشه به مشبه بده. به هیس و یکون و ثانی بیان هم به این نوع اضافه می اضافه بیانیه دومی بیان اوله دوامی بیان است برای اولی نه و ما اولوجین. آب نقره. منظور آب نقره یعنی آبی که مثل بگید نور ما اولوجین. یعنی ما اون اللجینه ما اون هوکلوجینه. آبی که مثل نور است. ما اون لجین ما اون آبی که او لوجین است خب ما میدونیم که آب که لوجین نمیشه یعنی مثل لوجین است اینم این یک صورت یا او بایین المشبه و بل مشبه به یا نه اصلا مشبه و مشبه هم به پشت سر هم اومدن مشبه هم به با من بیانیه اومده ها یعنی همین اضافه بیانیه از اضافه بریده شده با من اومده مثل اینکه میگه جرا ما اون من لوجاینن علای من لو جارو مجبور بعد از نکره سفر منم من بیانیه یعنی جریان یا روان شد آبی از جنس نقره آبی از نقره یعنی آبی که مثل پس اینا سوبر بگید تشبیه سوبر تشبیه حالا اگه عداد تو تشبیه و ورد توش نباشه میشه تشبیه بلی یکیش جایی که مشبه و مشبه به مبتدا باشن حالا چه ناسخ بر سرش در آمده باشد چه در نیامده باشد این یک دوم مشبه و مشبه به به شکل زول حال و حال باشد سوم مشبه و مشبه به به شکل مفعول مطلق نوعی باشه. مثل راق و زیدون است سه, سه چهار مشبه هم به به مشبه اضافه شده باشه مثل سهوبال آفیه لجین الماء. اون مفعول مطلق چی مفعول به دوم جزء همون مفتدار خبر حسابش میکنیم بعد مورد بعد اینه که صفت باشه مشبهان به و مشبه مصوف مثل سال ما اون لجین جا از, از جا ارجلون ار و بعد مورد بعد مشبه اضافه شده باشه به مشبهان به جوری که اضافهش بشه اضافه بیانیه مثل ما اون لجین یعنی آبی که از جنس نغره است خب معلومه آب از جنس نغره نمیشه یعنی مثل نغره است و آخری همین اضافه بیانیه با من بیانیه بیاد بشو ماون ما من لجه اینه. ما ماون منن لوجین یعنی آبی که از جنس نقره است یعنی آبی که مثل نقره است خب اینا صور تشبیه بود اگر این صور معروف نبود و جوری که ما ارکان رو احساس می‌کردیم از سیاق و جزء اول یه چیزی به مشبه نسبت داده بودیم و تو جزء دوم براش دلیل و برهان آورده بودیم که شود تشویش زمینی ولی اگر این سوره باشه میشه تشویش ظریفی. چون ما مشبع و مشبع اون به ووش ببین این بحث تمام شد حالا میان سر درس امروز. اقراض تشویش. یادتون باشه که انشالله هست من اول اول بحث تشبیه تشبیه رو به دو دسته تقسیم کردم. یکی تشبیه عادی و معمولی و یکی هم تشبیه مقلوب و معکوس، مقلوب با قاف و معکوس. تشبیه عادی و معمولی، و تشبیه مقلوب و محکوم تو تشبیه عادی و معمولی گفتیم چی؟ گفتیم وچه شبه وچه شبه که بودیم 90 درصد در 90 درصد در تشبیه اینطوریه گفتیم وچه شبه در مشبهان به اقوا اشهر اکمل از هر اتم نسبت تو مشبهی این اصطلاحاتو به کار بود یعنی وجه شبه در مشباهن به قویتر از مشبه هم. یه این تشبیه عادی و معمولیه شد؟ بعد اگه یادتون باشه گفتیم یه تشبیه هم داریم که 5 درصد اسمش تشبیه مغلوب و تشبیه بگید معکوسه. خب؟ اون 5 درصد تشبیه مغلوب و معکوس بعد از این درس می‌خونیم یعنی جلسه بعد. که این درس تموم بشه میرسیم به تشبیه مغلوب معکوس تموم میشه ولی تا الان از اول کتاب تا حالا هرچی ما تشبیه خوندیم همش تشبیه عادی و معمولی بوده یعنی از اون تشبیهاتی بوده که از اون تشبیهاتی بوده که وجه شبه در به اقوا اشهر از هر قطم اکمل نسبت به مشبه همش حالا تشبیه مقلوب رو الان ما اقراز و تشبیه میخونیم یه از تشبیه کدوم تشبیه رو میخونیم رو بخونیم ما که هنوز تشبیه مقلوب نخوندیم محکوس رو اونا بعد میخونیم قلزش هم میگیم اما این اقراز و تشبیه یعنی اقراز تشبیه عادی و معمولی یعنی تشبیهاتی که تا هر خوندیم هر قسمیش که میخواد باشه ها چه تمثیلی و غیر تمثیلی, چه زمینی و سری هر نوع تشبیه که خوندیم چه تشبیه بلیغ، مرسل مجمل اینا همه رو خوندیم نوع تشبیه عادی شما خوندیم که بچه شبه در مشبه به قویتر از مشبه هی. این تشبیه عادی و معمولی غرض متکلم از تشبیه کردن اون چیه؟ قرز چیه؟ یعنی یه نفر وایسده به یه نفر میگه شما مثل گل هستی شما مثل فرشته هستی خب این داره اینه تشمیح میکنه قصد و قرضش چیه؟ یکی دیگر هم داره یکی دیگه داره, یکی دیگه داره،, یکی دیگه داره، یه تو مثل میمون هستی خب این یه قصدی داره از تشمیح کردن اونم یه قصدی داره فاهم؟ میگیم اون اولی قصدش تحسینه یعنی زیبا کردن، زیبا کردن مشابه. قصدش مدهه این دومی قصدش تذویح زشت کردن و قصدش زمه قصد داره دیگه، معلومی دلتاشو. یه موقع میاد سر کلاس میگه زمین مثل یک توپ میمونه خب زمین رو تشبیه کرد به یک توپ. و قصدش از این چیه؟ بگیم قصدش از این بیانه مخواست مشبه و بیان کنه چی این داشت درست شده نه؟ پس ببینید ما اینجا میخوایم چیو بخونیم؟ اینکه که متکلم که تشبیه می از تشبیه خود چه قصد و غرضی دارد چون تشبیحات به دو دسته تقصیب میشه، یکی تشبیحات و عادی و معمولی که 95 درصده یکی هم تشبیه مقلوب و محکوز که 5 درصد اون تشبیه مقلوب و محکوز که 5 درصده درس بعد از اینه میخونیمش قرارزم میگیم ازش چیه اما در تشبیه عادی و معمولی که 95 درصد اقراز اینهاست اینا اقراز ماست یک دو سه چار پن شیش هبت میخونیم انشاءالله که فهمیده قصد ما چیه؟ قرض اول از تشبیه از نوع تشبیه عادی و معمولی قرض اول یعنی اول یه نکتن بگم اینو یاد بگیرید اولا ما اینجا الان مثلا فعص کنید شیش تا قراز میخونیم هفت تا قراز میخونیم اینطور نیستش که اینا تو یه سطح باشند یعنی مثلا اگر 100 تا تشبیه داریم، ها 5 تام قرض تشبیه گفتیم هر کدوم 20 درصد نه یکیش خیلی بیشتر استفاده میشه یکیش یه ذره کم تا برای قرض ها هست گرفتید اراض بستگی داره به اینکه من کدوم چه چقاصی داشتم از این تشبیهی که کردم قرض ها این 4 5 تاست 6 تاست اما اینات یه حد در استعمال نیستند بعضی موقعا به قول خودمون بعضی هاشون کمترن بعضی هاشون بیشترن پس این نباشه که فکر کنید مثلا اولی رو میخونیم این بیشتره دومی دو یا همشون با این یه اندازن نه بعد که بخونیم شما نگاه کنید تو تشبیهاتی که حتی تو فارسی به کار میره میبینید که بعضی از این اقراض خیلی زیاد خیلی استفادهش بیشتره بود. ما خیلی قصد اون رو میکنیم و تشبیه میکنیم شد. اولین قصد پایین نگاه کنید توی قوائد تو قوائد درس اقراض و تشبیه کسی را و تشبیه زیاد منها مایت بعضی هاش اینا می حالا یه سال آیا ممکنه دوتا غرض یه جا جمع شد؟ بله ممکنه یه موقع قصدش دوتا از این قرز ها باشه ولی یکیش که بیشتر بولد شده بیشتر رو آمده اونو ما دسته حساب میکنیم دو تا نمیکنیم میکنیم م? یکی شد زکنه. اونی که بیشتر مقصوده یعنی با قول خودم مقصوده اصلی اغراض و تشبیه را ماید پایین نگاه کنید میگه الاغراض اغراض مذکورت و فلقاعده این از اغراضی رو که ما تو این قاعده ذکر میکنیم ترجه او. جمیعها کما ترا علی همه اینها همونطور که تو میبینی برمیگرده به مشبه زیرش در تشبیه عادی و معمولی غرض از تشبیه به مشبه برمیگردد در تشبیه عادی و معمولی که 95% درصد تشبیهاته غرض از تشبیه به مشتبه باز می‌گردد هر از به مشبه باز می قرز از تشویق به مشتبه باز می‌گردد هر از از تشویق به مشتبه باز می‌گردد و هاذا اول غالب و این که به مشبه برگرده این قالبه در تشبیحاته من گوتم نهد و پنگ درسه در فعل و قد قد برسن فیل و یعنی گاه درسه و قد ترجوه ایلن مشبه به گاهی اوقات غرض بر میگرده مشبه به و ظاله کف تشبیه مقلوب و این در تشبیه مقلوب و معکوس و, مقلوب و پس در تشبیه عادی و معمولی اقراض تشبیه به مشبه برمیگرده اینایی که درست بخونیم و قسم قالب تشبیه همه در تشبیه مقلوب که پنج درصده غرض برمیگرده به مشبه اون به که درس بعدی ماست خواهیم, خواهیم خب این دیگه راحت شد اقراض و تشبیه کسی را تو منها مایت یکیش اینهاییه که میخونیم یک بیان امکان مشبه بیان امکان مشتبه یعنی قصد من اینه که بیان کنم مشبه ممکن است شدنیه قصد این است که بیان کنم مشبه ممکن است شدنی بیان امکان بگید مشبه خب. یعنی چی؟ یعنی من یه چیزی رو به یه چیزی تشبیه میکنم و قصد منم اینه که بگم این مشبه شدنیه ممکنه ناممکن نیست این اتفاق کی صورت میگیره؟ این قرص کیه موقعیه که شما نسبت میدید به مشبه یک چیزی رو که غریبه غریب با عجیبه شما به مشبه یه چیزی رو نسبت میدید که یه مقدار باور نکردنیه غریبه و برای خاطر اینکه قرابت رو از او بردارید و بگید شدنیه تشبیهش میکنید چون میگن عدل و دلیل نلا وجودشه و اگر یه چیزی اتفاق افتاده پس شدنیه پس این اتفاق کی میافته؟ این که شما شما یه چیزی رو که عجیب غریب نشدنی به نظر میاد به مشبه نسبت میدید بعد احساس میکنید اینو باور نمیکنن برای خاطر اینکه که باور کردنی بشه امکانش بگی هست تشویقش بکنی یه مشبع اون به براش میاری وقتی میاری میگن خب اون شده اینم میشه پس شدنیه پس شدنیه حالا یه مثال بزنم ببین خود شما اینا تو فارسی و اینا استفاده میکنید مثلا من به یه نفر میگم آه شما برای کنکور و فوق لیسانس میخونی که قبول شی بعد میگه سه روز مونده به امتحان میخونم قبول میشی شد سه روز میخونم بعد احساس میکنه که من شاخ در بردم چجور؟ مگه میشه سه روز بشینی بخونی قبول شد میشه؟ احساس ما این نشدنیه یه چیزی نسبت داد به خودش که مشبهه که قبول شدن باشه اونم تو سه روز خوندن خب برمیگرده میگه مثل فلانی پارسال سه روز خوند قبول شد درست چرا میگه مثل فلانی پارسال سه روز خوند قبول شد خود چه میکنه برای خاطر این که بگه بگید این مشبه که ما یه چیزی رو بهش نسبت دادیم ممکنه شدنیه درست شده نه؟ و بارها شما همچین چیزی رو به کار بردید یه موقع به مشبه یه چیزی رو نسبت دادید بعد احساس کردید این یه مقداری باور کردنش ضعیفه سریع تشبیهش میکنید به یه چیزی که اون کار توش اتفاق افتاده قصد و خرزتون اینه که بیان کنید مشبه با این چیزی که ما بهش نسبت دادیم ممکنه. بیان و امکان المشبه بیان و امکان ال... مشتبه نگاه کنید شرحش رو بیان و امکان مشتبه و و که کهی نیست ند به این انگامیه که اسناد داده شده به مشتبه امرون یک چیزی که مستقربن غریب شمرده میشه عجیب شمرده میشه لا تزول و قرابته که قرابتش برطرف نمیشه الا به ذکر شبیه نه مگر شما یه شبیهی براش ذکر کنید وقتی شبیه براش ذکر کردید میشه میگه میشه شدنی. الان تو نموزش نگاه کنید نموزش یک نموزج یک قال ابن رومی ابن رومی شاعره تشویر بود دی غیر تشویر باشه رومی فی مدح اسماعیل بن در مدح اسماعیل بن بلبل ایشون در مدح اینطور گفته آیه ابن بلبل میگه کم ابن قد انا ببنن زورا شرفن زورا جمع وست یعنی قله زورا جمع همه وست یعنی قله شرف هم که مشخص اله هم یعنی بالا رفت علی. یعنی مشخص این کم هم کمه یعنی چه بسیار چه بسار پدری که قد اله بالا رفته عزت یافته ببنه به واسطه پسرش بالا رفته است به واسطه پسرش چه چیزی رو زورا شرفه قله های شرف چی با؟ چه بسا پدری باشد که به واسطه فرزند خود به جایگاه های بلندی رسد عجیب نسبت داده ها؟ نیه چرا عجیب؟ چون معمولا فرزندان هستند که آغاز داده میشن و به واسطه پدرشون به جای میرسن این معمول اینه م? میگه گیرم پدرت بود فاضل از فضل پدرتو را چه حاصل این من این رو عکس میگه میگه پدرهایی هم داریم که به واسطه فرزندانشون قله های شرف را بالا رفتن ما احساس کردیم که چیز غریبی رو نسبت داد مشتبه اینجا کیه پدر چی بهش نسبت داد اینکه به واسطه فرزندش قله های شرف را تلی کنه برای این این بگه این میشه میاد تشبیه میکنه میگه کما علا به رسول الله عدنان همانطور که عدنان عدنان جد هفتمشتوم پیامبره. یعنی محمد ابن عبدالله ابن فلان ابن فلان ابن عدنان صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر الان اسم عدنان چقدر در بین عرب‌ها هست؟ او خیلی عدنان می‌سازه، به چه اعتبار به اعتبار اینکه جد پیامبر بود. از فرزندان حضرت اسماعیل بود. شد میگه همونطور که عدنان اسمش دو تاریخ مونده. و از بین نرفته و به جایگاهی از منزلت رسیده به واسطه فرزند هفتم هشتم بعد از خودش پس می شود که پدری به واسطه فرزندش به جایگاهی از علوف و شهن و عظمت برسه شد یا نه؟ پس تشبیه کردیم پدری رو که به واسطه فرزندش به جایی میرسه، به رسول خدا که ادنان که پدر هفته مشلومه به واسطه او اسمش در زبان ها افتاد گفت اون شده اینم میشه نگاه کنید پایین میگه اولو و لعبه بلعبن مشبه اولو و عدنان به رسول اله هم به ارتفاع و الاول اله یکی به دیگری شأنش بالا میره پدر به فرزند غرض استش پیش چیه بیان و امکان المشبع بیانش نمیشه بیان و امکان المشبع حالا یه دونه مثال یه مثالم تو کتاب زن نگاه کن میگه که دانن الی عیدل عفاد دانن یعنی هو دانن هوه دانن دان یعنی نزدیک دنایدنو یعنی قراب دانن یعنی قریبون یعنی هو قریبون اون آقایی که داشته مدهشون که این آقا نزدیک است در دسترس این اینا عیدل و افات افات جمع آفیه یعنی محتاج یعنی سائل درمانده تا اینجا چی میشه؟ او نزدیک است به دستان درماندگان او در دسترس گداه هاست او نزدیک است به محتاجان و شاسه اون شاسه یعنی بلند مرتبه بعیدون متضاد بودانه بلند مرتبه است ان کل ندن از هر همتایی ند جمعش انداد یعنی همتا فن ندا در کرم و ذریب و مانند یعنی او بلند مرتبه است از هر ندی ند در کرم و مانندی در کرم همتا و مانند در کرم ندا یعنی در دسترس اینو میگه میگه این آقا در دسترس محتاجان و گداهاست ولی دست امسال هاتمطایی ها که ند و ضریب هستند مانند هستند کریم هستند به اون نمیرسند. میگه عجیب ها میگه هر محتاجی بخواد در این در دسترسش اما پادشاهان و بلند مرتبگان و همتایان اگر بخوان خودشون در کرم ماننده و کنن نمیتونن در دسترس جداست و دور از دسترس پادشاهه این نمیشه که یعنی ضعیف به راحتی دستش به اون میرسه اما قوی حتی نمیتونه اونو ببینه یه چیز عجیبیه دیگه ام؟ بعد یه مثال میزن میگه کلبدره یعنی هوه کلبدر این آقا مثل ماه شب است این آقا مثل ماه شب چهارده است از این جهت تشبیه کرده از این خیلی در بلند مرتبگی بالاست کی دستش به ماه میرسه می ماه اینقدر دور است که دسته کسی به او نمیرسه بلند مرتبه است اطلافه دولون این واقعا واق به حالی است و زعوهو نل اصبت سارینه جد و غریبه یعنی غریب اون جدن اسبه یعنی کاروان جماعت گروه سارین یعنی شب پیمایان سرایست یعنی چون کسی که در شب داره حرکت میکنه تنها چیزی که میتونه کمکش کنه راه رو پیدا کند و برود چیه ماه ماه تابان اونم ماه شب چهارده. میگه این آقا مثل ماه شب چارده است اگه کسی بخواد دستش به این برسه هیچ وقت دستش به این نمیرسه اصلا همتای ماه نخواهد شد ماه کجا و این کجا اما اگه محتاج به ماه باشه ماه جلوی پاشه تو بیابون داره میره کاروان؟ حرکت میکنه نیازمنده به نور ماهه ماه در دست رستش پس داریم چیزی که نیازمند او رو در دسترس دارد و اگه کسی بخواد خودش رو با ماه هم آورد بکند هیچ وقت پس این آقای تشمی کرد به ماه برای چی؟ برای اینکه بگه که اون چه که ما نسبت دادیم به مشبه ممکنه اونی که نسبت دادیم به مشابه چیه؟ اینکه محتاج در دسترسشین ولی کسی که گردن کشوار باشد دستش به او بد را عفرت و زو اهو للا عصبت قلب. نگاه کنید بحث رو ما سفال و, و ممدوح او بیت توصیف کرده بهتری ممدوح خودشو در بیت اول بینهو قریبون و للمحتاجین به اینکه این در دسترس محتاجان این دور منزله اما خیلی منزلتش بالاست بین بینه و بین نظراہی فلکرمه بنون شاسه بین او و بین همتایانش نظرا جمع نظیره در کرم بین او و بین کسانی که همتای او باشند در کردن با اونان یعنی فاصله فاصله ایست خیلی زیاد شاسد. فاصله دوریه بین نظیر با او خیلی فاصله دارد اما محتاج این در دسترسش قیب مگه ولکن البختری هینما احسن له و صرف او به وصفه این ولی بهتری موقعی که احساس کرده که مملوش را وصف کرده به دو وصف متضاد. یکی هم غریب است هم بعید است. گفته غریب است و بعید است. هما القرب و توصیف کرده به غرب و بود. اراده انجوبه یه نه لکه ان که ممکنه. خواسته بگه میشه میشه. که یه چیزی هم غریب باشه هم بعید. و انلعی سفر عمر تناقض یه موقع احساس نکنی اینجا ما تناقض داری و متناقض گردیم فشب به هم او هاو بلباد پس تشفیل کرده جو به ماه شب چهارده اللذی هو بریدون فسما که این ماه شب چهارده در آسمان خیلی بالاست ولیکن نزوه قریب جدا جدن لسایری نبیلی ولی نورش جدا نزدیکه زیر پاشونه برای که سائر هستن حرکت میکنند در شب و حاضا عهد و اقراض و یعنی یکی از اقراض تشبیح و هو بیان و امکان مشبه عبارت است از این که بیان میکنیم این که مشبه با این صفتی که ما بهش نسبت دادیم ممکن است این قراز هم طبعا فکر نداشت که ما بخوایم قراز دوم بیان حال مشبه بیان حال مشبه خوب بیان حال مشبه حال و وصف مشبه اوضاع مشبه رو میخوایم بیان کنیم بیان حال مشبه کنیم تشویش میکنیم غرض اینه ببینید گوش کنید الان شما بارها این اتفاق افته این خودتون رو اینا استفاده میکنید یعنی پاید نمیدون استفاده حالا دارید یاد میگیری مثلا فرض کنید من میگم که من برادر فلانی رو دیدم به یه نفر من برادر فلانی رو دیدم اون برمیگره به من میگه چجوری بود چجوری بود دادا ششور دیدیه چجوری؟ بود خب من فکر میکنم میگم شما حسن آقا رو دیدی؟ یاره آره حسن آقا فلانی یا بعد دیدم دیدم دیدم حسن آقا میگن میگم داداشوی فلانی عین حسن آقا مثل حسن آقا خب اینو من تشبیه کردم به حسن آقا که اون دیده بود واسه چی؟ وقتی گفتم که داداشش مثل حسن آقاست یعنی چی؟ اون میفهمه مثلا قدرش یه متره هفتات سانته رنگش مثلا گندنگونه سنش مثلا چه ساله نور متوجه میشه دیگه؟ حال مشبه برات مشخص بس باشه. با آنها چون شده شما مثلا به یه نفر گفتی؟ من یه لباس خریدم چه رنگیه؟ خب رنگشو نمیتونستی تشکیز کردی؟ نگاه کردیم و برای اونقدر یه چیز پیدا کردی که همه رو گفتی؟ بسیم بسیم وقتی تشبیهش کردی بسیم اون مثلا باید ها مثلا زیتونیه متفهمید، حال مشبه رو متوجه شد داد پس بیان حال مشبه نگاه کنید که و ذالک هینما یکون المشبهو ها غیر معروف صفته قبل از و این موقعی که مشبه صفتش مشخص نیست قبل از تشبیه پیش کی مشخص نیست پیش مخاطب مخاطب نمیدونه میگه داداش فلان دیدم میگه چجوری بود نمیدونه قبل از تشبیه صفتش برای مشبه صفتش برای مخاطب معلوم نیست. فیوفید و حوات تشبیه ها شما وقتی تشبیه می کنید، این تشبیه شما به او فایده میده این وصف این مطلب رو متوجه میشه که او چه صفتی داره هست. این هم غرض دوم بیان حال بگید مشبه. الان نگاه کنید نموزش دوم رو میگه ا کل زیجود الیکه مسیره میگه میبینن هر آدم بخشندهی رو زیجودی رو ارا کل زیجود الیکه مسیره, مسیره. الیکه خبر مقدم مسیره هم ابتدای ما هست. جمله حال است از برای کل نسی جد میگه میبینم هر آدم بخشنده ای رو در حالی که به سوی توست حرکتش هر آدم بخشنده ای رو میبینم که به تو اقتدا کرده حالا اگه عراد و مفعولی باشه یعنی معتقدم کل نسی جوده میشه مفعول اول الهی که مسیر اون میشه یعنی من اعتقاد دارم هر آدم بخشنده ای تو این جا هست همه این بخشنده ها از تو یاد گرفتن الیک مسیر او، مسیر و حرکتشون به سوی توست خب الان مشخص نیست که این آقا چه جایگاهی دارد در کرم و دیگران چه جایگاهی دارند در کرم حالش مشخص نیست حال او و حال دیگران در کرم چجوریه مشخص نیست تشبیل میکنه. میگه که انکه بحرون. انگار تو یک دریایی در کرم ول ملوکه بر ملوکه ول ملوکه از بجای کافه که است جداولو جداولم از بجای بهر یعنی که انکه بحرن. و لکأن للملوك جداول انگار تو دریایی و انگار که بقیه پادشاهان نهرهایی هستند از اون دریا انگار توی دریایی در اینکه که مستغنی هستی بی نیازی به کسی نیاز نداری از خودت هرچی داری و اون پادشاهان هم بگید انگار جویه هستند هستن که از این دریان نهرهایی هستند هستن جدول هستن جویه هستن که از این دریا مشتق شدن یعنی آب خودشون از این دریا میگیره انگار تو یه حوض بزرگی که از اون جویهایی رو کشیدند و این جویه ها دارن آب از این حوض کم این تشبیه کرد تشبیهش کرد به دریا برای خاطر چی به این که تو دیگران ازت استفاده میکنن خودتو منبعی اونا رو تشبیه کرد به جدول برای چی؟ برای خاطر اینکه بگه اونها مستقل نیستن خودشون ای ندارن بلکه از یک منبع عظیمی که اون دریا باشه آب الان میفهمیم یعنی تو جودت از خودته ذاتیته اونها این جود رو از تو یاد گرفتن درست شد؟ این که انکه ول ملوک جداولو نگاه کنیم میگه از زمیر فیکرن نکه مشبه به مشبه هون به تشبیه کرده این رو به دریا در چی؟ در مستقل بودن و عظمت یعنی همه چی مال خودته علی ازم بیان آن مشبه مخواسته که مشبه چه جایگاهی داری یعنی اصل است و اصیر ملوک تشبیه شدن به جداول در چه چی چیز؟ در این که استمداد میکنه از یک کسی که بالاتر از خودشون اعظمه اینها از پادشاه شاهنشاه پادشاه بزرگتر خلیفه میگیرن جویها هم از دریا میگیرن بیان حال مشخص. مشخص شد قالن تو از زوبیانی آقای نابقه زوبیانی گفته نابغه، زبیانی شو جای است حال نابغتو از زبییان خب آقا نابغه زبیانی چه گفته؟ قوم میگه که نابغه زوبیانی دور شاعر من شعرا الجاهلیه شاعر از شاعران جاهلی و سمعه عن نابغه غزل نبوغی شعر بهش گفتن نابغه به خاطر اینکه نابغگی داشته شعر سرآمد بود استعداد وافر داشت شهد الله عبدالملک ابن مروانه به انه اشعر العرب عبدالملک که مروان شهادت داده که این شاعر شاعر عربه از همه بناتر شاعر ترین عرب ها اینه و کان خواستن به نومان و من ندمایی خواستن به اصطلاحه یعنی دربست در اختیار بود ویژه بود این آدم به طور کل در اختیار نومان ابن منظر بود در جاییه یعنی با کسی دیگه کاری نداشت شیفته کشته مرده نعمان ابن منظر بود و از کسانی بود که از همراهان نعمان ابن منظر بود خواستن به نومان و من دمایی و یکی از همنشینانش بود ندیم یعنی هم پیاله. یکی از هم پیاله هاش بوده و ویژه در خدمت نومان ابن منظر و کانت تون سبولهو قبتون همراه و به سوق و برای او خیمه ای قبه ای سرخ بنامی شده در سوق اوکاز بازار اوکاز, سوق اوکاز در جاهلیت در جزیرت العرب چهار ماه سال دایر می شده هر کسی هر شاهکاری داشته مثل نمایشگاه بینون بوده می آورده نشون می داده. این یه دونه خیمه عظیمی رو اونجا براش بنا می‌کردند، شعرا می‌اومدن شعر می‌خوندن، این داوری می‌کرد. اینقدر قدرتمند بوده. و سرآمد و مکان تنسب له قبتون همراه او به سوق و یعتی علیه شعرا و یونسدونه او اشعارهم، می‌اومدن براش شعرشونو رو می‌خوندن. یونسدونه و, و یهک اونم داوری میکرد در شعر اینا میگفت کجاش اشکال داره کجاش درسته و قدمات مات قبعی به اسد چند سال مونده به کمی مونده به به اسد از دنیا رفت خب آهای نابغه زوبیانی میگه چهن نکه به همون نومال بن منذر میگه میگه تو مثل خورشیدی نمیخواد بگه تو مثل خورشیدی درسته ممکنه مدهزش در بیاد ولی قصدش اینه که تو بگه تو چه جایگاهی داری قصدش جایگاه نشون دادنه بیان حال مشبهی مشبهمون کافه میخواد بگه حال تو چیه جایگاه تو چیه میگه که انکه شمسو ول ملوکه اینجا درسته ول ملوکه کواکه میگه انگار تو خورشیدی و بقیه پادشاهان سفر کنند. بقیه پادشاهان الان خورشید تو آسمان الان هست. سومش خورشید هست ستاره ها سر کی میبینه رو؟ هیچ کسی. چرا چون نور خورشید اصلا اجازه دیدن و اونها رو نمیده. اگر خورشید نباشه ستاره ها چی میشن؟ دیده میشن حالا نگاه مو... او اینم نور داره اونم نور داره. میگه جایگاه تو اینه. یعنی اگه تو توی مجلسی باشی هیچ کسی دیگه نگاه به زید و امر و بکر و خالد نمیکنه، کنه که اونا با قول خودمون یه جایگاهی دارن وزیری وکیلی هم. کرمی دارن هیچ اما اگه تو نباشی مردم اونا رو ببینن یه ای ای این نواینده از اون یکی وزیر اون یکی وکی درست نه جایگاه رو داره نشون میده میگه که شمسون و الملوکه کواکه بود بعد توضیحش میده تو میگه ازا طلعت لم یبدومن منهن نکوکه بود زمانی که خورشید طلو کنه خورشید تو آسمان باشه لم یبدو یب دو بوده واو به جذد یعنی لم یظهر ظاهر نمیشه من نه از این کواکب کوکبن هیچ ستاره. وقتی که خورشید در آسمان باشه هیچ ستاری از این ستارگان دیگه دیده نمیشه اصلا و عبد جایگاهشو نشون داد کو جایگاه تو جایگاه خورشیده و جایگاه بیان حال داریم جایگاه بقیه مثل ستاره ها تو باشی هیچ بینی دیده نمیشه تو نباشی بقیه به چشم میاد الان فهمیدین بیان حال مشبع را جت نگاه کنید توی متن بحث و نابغتو یوشد و ممدوحو به شمس و یوشبهو قیرهو من الملوکه برکماکه او از ملوک رو بکماکه لعن سطوت الممدوه زیرا قلبه ممدوح تغوزو یعنی تغوت تو پایین میاره من سطوت کل ملک اون عظمت ممدوح فرو میریزد عظمت هر پادشاهی تغوزو من و کل ملکم کما تخف شمس و که بره همونطور که خورشید ستارگان رو پنهان میکنه به چشم میان. فهوه یورید و حال الممدوح این حال ممدوح رو بیان کنه و حال غیر هیمن الملوک. دوتا تشبیه دیگه. چهن لکه شمس و ملوک که با که مخواد حال ممدوح و ملوک رو بیان کنه. وقتی این رو گفت شما جایگاه و حال اونها رو میفهم. حالا آیا وقتی تشبیه به خورشید کرده ازش زیبا شدن هم فرمیده بشه برای یه قشنگ هم هستی به خرشید تشبیه درست شو؟ اون ولی دیگه قصد نیست اینجا قصدش بیان حال بوده چون مقایسه مقاسب بکنه این آقا رو با پادشاهان دیگه فخواه یورید و انیوبر یه نه حال ارمام دوه و حال غیرهی مندورد و بیان الحال من اغراض تشبیه بیانه ها را از اغاز تشبیح هست همچنین خب این همستی قراز دوبام هم تیک قراز باز ما اینو زیاد بکنیم من مثال های آمیانه میزنم شما میاد تو کتاب مثال هدوی شو میخونیم بینید خودتون استفاده میکنیم بیان مقدار حال مشبه بیان مقدار حال مشبه خوش کنید الان شما بارهای همچین چیزی رو شنیدید و گفتید یا غیره میگه مثلا گربه به هم خورد، فلانی ترسید رنگش سفید شد بعد میگه مثل گچ یا میگه یه چیزی به فلانی گفتم خجالت کشید رنگش قرمز شد مثل لبون خب شما خودت داری میگی رنگش سفید شد وصف و مشخص کردی بعد میگی مثل گست این مثل گس که میگی یا میگی رنگش قرمز شد از خجالت سرخ شد مثل لب اینجا غرض چیه در از بیان مقدار حال مشبه این کی اتفاق میفته موقعی که اصل حال مشخصه اصلشونی که این سفید شده رنگش یا قرمز شده رنگش اصل حال مشخصه اصل حال مشخصه اندازش مشخص نیست چه مقداره مشخص نیست لذا توصیف میکنیم تا اندازش معلوم بشه توصیف میکنیم تا اندازش مشخص بشه بیان مقدار حاله این موقعیه که اصل حال معلومه تشبیح می‌کنیم تا مقدارش میشه هست مثال زدم دیگه دیدید دیگه, دیگه سفید شد رنگش مثل گر سرخ شد از خجالت رنگش مثل لبو و امثال اینها حال. حال رو نگاه کنید توی در از توی اون قواهد میگه بیان و مقدار و حالی وزالی که ازاکانل مشبه و معروف از صفر این زمانیه که مشبه صفت معلومه یعنی اون با شباهه معلومه مشخصه قبل از تشبیه قبل از اینکه من تشبیه کنم معلومه میگم رنگش سفید شد رنگش قرمز شد اما معرفتان اجمالیه تن به طور مجمل به طور خلاصه معلومه اندازش مشخص نیست به طور اجمالی ما میدونیم رنگش سفید شد به طور اجمالی میدونیم رنگش قرمز شده اما چه مقدار مشخص و کانت تشبیحو یونب یوبین و یعنب یعنب یعنب مقدار است. و تشبیه بیان میکنه مشخص میکنه مقدار این صفت رو این صفت اندازش مشخص بشنی شده حالا نگاه کنیم به سال مال آقای متنبی شما همتون میدونید که گربسانه گربه از این گربه خانگی گرفته تا شیر و پلنگ و یوز پلنگ و ببرو اینا همه گربه هم. گربه وحشی و چه نه؟ نه همه میگن گربه سانان این گربه یک خصوصیتی دارن اما تو میدونی این خصوصیت چیه؟ اینکه اینها تو شب که نگاه بکنی چشمشون میدرخش چشمشون ازش نور در انگار واشند انگار چرا آن. دیده دیگه گربه پس این یه خصوصیتی دارن چشمشون تو شب برق میزنه موشن. آقای متنبی توی بیابون شب یه شیرید رو دیده شب یه شیرید بیابون اگر تاریک باشه و بیابون باشه و شب باشه شما شیری رو ببینید دست و پاب و سر و صورت و شکم و دوم اون شیر رو نمیبینید فقط تنها چیزی که شما میبینید چیه دو تا نقطه روشن دو تا نقطه روشن که چشمان رو شب تاریک شیر دیده دیگه شب تاریک شیر دیده شیر دیده نمیشده فقط دو تا گلوله روشن چشمانش دیده میشه. حالا اینکه چشم شیر در شب میدرخشد و دیده میشود شما میدونید اما این متنبی این شیری رو که دیده چشمان او میدرخشیده چقدر درخشش داشته مخواد اندازه درخشش چشمان او رو در شب برای من بیان اون شیری رو که دیده مثل این که مثلا بگه مثل دو تا لامپ صد می‌درخشید. خب من لامپ صد مثلا دیدم مثل دو تا لامپ صد. یا برگرده مثل بگه مثلا مثل دو تا چراغ پراید. خب من پراید دو شب دیدم چراغش روشنه بود. تشخیص بدم اندازش چقدر بوده. تشبیه کرده برای اینکه اندازش مشخص بشه. ولی اصلش معلوم بوده که شب بوده و تاریک بوده و چشم شیره اما چقدر می درخشیده که این دیده مثل دوتا چراغ پراید بوده مثل دو تا لامپ صد بوده تشمی میکنه میگه مثل این مطلب رو دانستید گوش کنید قدیم افراد شبها سفر میکردن سفر روز نمیشد بکنی تو جزیلت و لغت جرم و از تشنگی میمورد تو بیاهون کسی میخواست حرکت نم. حیوانات حرکت میکردن خسته میشدن اون شطور و این روح پا آدم ها هم تا فرسوده بود لذا برای حرکت کردن بهترین موقع شب بود اونم شب‌هایی که ماه تو آسمان بود راحت حرکت میکرد خونک بود و میتونستن مقصدشون رو تیک در شدت گرما استراحت می‌کرد. بعد اینها اگر تو شب به جایی می‌رسیدند می‌خواستن یکم اتراخ کنن. یعنی کاروان میرفت تو شب تو بیابون می‌خواست یه جا اتراخ کنه. خب اونجا اتراخ می‌کردن چیکار می‌کردن؟ دو تا آتیش روشن می‌کردن. یه آتش اینور یا آتش اون. بر. مثلا این آتش زنان و خدمه و اینها جمع میشدن دورش بچه ها باقیه یه آتش ها مردا جمع میشدن همیشه اینطوری بوده این کاروان وقتی می میکرد دوتا آتش روشن که هم آتش باعث می شد که هم دیگر رو ببینن هم آتش باعث میشد کاراشون رو انجام بدن درست شد هم آتش باعث میشد که گرم بشن قضاشون رو بپسن کاراشون رو حالا این دوتا آتش که در بیابان روشن شده بوده مثلا ما از یه جاده داریم بیریم نگاه جلو دوتا آتیش هست مردمی که دورو هستن که ما نمی‌بینیم ما فقط چی رو می‌بینیم ما آتیش ها اون دوتا گلوله آتش این تصویر این تصویر الان برای ما جوریه که من باید این توضیح بدم کاروانا تو بیابون که میرفتن اطراق میکردند زن‌ها یه جا جمع می شدن مردم یه جا جمع می شدن هر کدوم آتیش روشن می‌کردن، مردم از دور این آتیش‌ها رو می‌دیدن، می‌فهمیدن اونجا کاروانی اطراف کرده، اینو من باید بگم شما بفهمید. ولی اون زمان هر کسی رو ببینی یه مسافرتی رفته بودی، تو بیاون 100 بار اینا رو دیده بود، این آتیش‌ها. کاروانی اطراف کرده، اینا می اومدند بغلش راحت می‌شدن، سلام می‌کردن، علیکم بیاد. الان متنبی میگه این شیری که من در بیاغون دیدم چشماش میدرخشید مثل درخشش آتش کاروان هنگامی که اتراق کرده خب این آتیش... کاروان وقتی اتراق میکرد آتیششو که روشن میکرد یا آتیشی روشن نمیکرد که پایمت چوره داشت آتیشی روشن میکرد که هفتشت سند شهست سند، داشت از دور دیده میشد چقدر چه, چه شکله همین مثل مثلا چراغ پرای که همدی دیدنش یا لامپ صد که داشت اینو داره میگه پس قصدش از تشبیه چشمان اون شیری که در بیابان در تاریکی دیده به آتش کاروانی که اوتراخ کرده قصدش بیان مقدار حال مشعل مقدار اون روشنی رو بیان کرد میگه ما قوبلت عیناه عیناهو خب میخوره به اون اسد شیر و قال فی وصف اصد ما قوبلت عیناهو عیناهو نایفایله رو در روی نشده با دو چشم این شیر یعنی دو چشم این شیر دیده نشده الا زنت این زنت ها حال است از برای اون عیناه مگر در حالی که گمان شده این دو تا چشم رو در روی نشده از با دوچشم این شیر مگر از در حالی که گمان شده است این دو چشم، تحت دو جا دوجا جمع دوجی است یعنی تاریکی گمان شده است در دل تاریکی ها نارل فریق یعنی کاروان. این نارل فریق معقولول دوم زون است که معبول اولش عللب شده نارفایر. میگه نو رو در روی نشده با این دو چشم شیر، مگر از در حالی که گمان شده است این دو چشم، در دل تاریکی ها آتش کاروان، آتش کاربان حلولن حلولن حلول، یعنی وقت حلولن این هم متعلق به زنت است. اون تحت دو جا یعنی در زیر تاریکی ها وقت حلولن به هنگام حلولین دوتا زرفه در تاریکی های شب در وقت حلول این دوتا چشم این شیر گمان شده که آتش یک کاروان است در دل شب در هنگام اتراق یعنی خب ما قوبلت عیناهو اللا زنتا تحت دو جا نار الفریق قلورا قصدش از این تشبیه بوده میخواست مقدار درخشش چشم شیری رو که دیده بوده در بیابان برای ما مقدارشو بیان کنه گفته مثل مقدار آتش کاروان بوده هنگامی که اطلاق کرد پایین میگه که نگاه کنید از دو جا جم و دو جیه ولی از ظلمتو تاریخیست. و ولفریق الجماعتو فریق جماعت و هلولن هلولن یعنی مقیمین میگه هلول مثل شهود جمع شاهد حلولم جمع حال یعنی موقعی این از, از لغتی درسته میگه و حال اون من الفریق و این حال است از فریق این درست نیست این حال از فریق نیست این هلوله ظرفه یعنی وقت حلولن به اعتبار موضوع چون حال از مضافنه لیسه جا میاد توی مبادی نگاه کنید حال از, از مضافنه لیسه جا میاد جز باشه مثل جز باشه یا مضاف در مضاف و, و حال عمل کرده بشه اینکه نیست از نظر ترکیبی غلط گفته که این حاله بلکه ظرفه مستر اینجا به اعتبار مضاف مقدرش ظرف بابه شده خب این کار نداریم ما این داخل بلاغت نیست نه شما برید مبادی بحث حال و نگاه کنید این تیکه مقص با اونجا مقایسه کنید و میفهمید الان اصل داستان بر اینه. که میگه این شیری که من در بیابان دیدم چشمهاش میدرخشید و درخشش چشمه های او به حدی بود اندازه داره رو بیان میکنی مقدارشون که آتش یک کاروانیست در دل بیابان و کرده شما اون رو ببینید و مردم اون زمان این رو زیاد دید بودن نگاه کنید توی بحث و بیت المتنبی یصف صف و عینه بیت متنبی توصیف میکنه دو تا چشم شیر رو زلام در تاریکی به شدت احمرار و توقد به شدت سرخی و فروزندگی توقت تشبیه میکنه بیت متنبی توصیف میکنه دو تا چشم اون شیر رو که دیده بوده در تاریکی در شدت سرخی و فروزانیش حتی این نمن یراه همامن بودن جوری که اگر کسی این دوتا چشم رو از دور ببینه یز نه گمان میکنه این دوتا چشم نارن لغومن حلول مقیمین گمان میکنه که این آتش است برای کاروانی که حلول جمع حاله مقیم شدن یه جا اطراق کردن مقیمین فلو لم یعمد المتنبی الی اگه متنبی قصد نداشت تشبیه کنه چه میگفت لقال اینطور میگفت ای ان عینی العسد نا محمرتان اون دوتا چشم شیری که من دیدم سرخ بود و میدرخشید فروزان بود اینو میدونسته شما میدونید خواسته مقدارشو بیان کنه ولاکنه اله الی تشبیه ولی ناچار شده تشبیه کنه چرا لیو مقدار حاضل اهمرار تا مقدار این سرخی رو و ازمهی و عظمتش رو بزرگی رو به شمالشون بده قصدش این بوده و حاضام نقراز تشبیه ایزن بیان مقدار از اقراز تشبیه هست ایزن. پس بیان امکان مشبه یک بیان حال مشبه دو بیان مقدار حال مشبه سه این اقراض سگانه رو تا اینجا خوندیم و تو بحثم ادامه دادیم یه مقداری کمش باقی میمونه و من قصد دارم که این رو بگذرم که تکرار بشه جلسه بعد بعد تشبیه مغلوب و معکوس رو که ساده هست برای شما بیان کنم بعد اگه اون رو بیان کنم دیگه کلن تشبیه تمام میشه و ما به شما گفتیم بعد از تشبیه میریم سراغ مجاز استاره ها که پایه و اساسش بر تشبیهه یعنی اگر شما این تشبیحات رو که من الان به شما یاد دادم تا اینجا این تشبیهات رو خوب تو داشته باشی ما تو استاره راحتیم اما اگر شما اینجا یه مقداری گیر داشتیم متوجه نشدی یا تنبلی کنی اونجا کار سختتر میشه اینا فهمیدنی هم هست اگر انسان فهمید دیگه بلده دیگه بلده فوقش اینه که نهایت مثال دیگه میتونه قشنگ متوجه بشه ما این مبحث رو برای شما گفتیم اون مقداری کمش هم مثل اون مورد قبلی نگه داشتم برای جلسه بعد که انشالله درس تکرار بشه و بتونید مبحث خودتون رو جمع کنید موفق و معاییت و منصور باشید انشالله که در فناه خداوند متعال پیروز باشید. و باز هم خدمتتون ایام رو تبریک میگم بعثاتون خواهش میکنم که تا انشالله جلسه آیندهمون که شنبه هستش یه نگاه کاملی بکنید جمع و جور کنید مطالب رو و تو این ایام خوب استفاده کنید از وقتتون معید باشید موفق باشید منصور باشید انشالله الله در پناه هر. و عليكم علیکم و رحمت الله و برکا.